ای یار ز روزگار باش آسوده واندوه زمان کم خور از بیههوده چون کسوت عمر بر تنت چاک شود چه کرده و چه گفته و چه آلوده ای نیک نکرده و بدیها کرده وانگاه به لطف حق تولا کرده بر اف مکن که هرگز نبود ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده اندازه عمر بیش از چست منه، هر جا که قدم نهی به جز است منه، زان پیش که کله سرت کوزه کنند، رو کوزه زدوچ و کاسه از دست منه. این چرخ چو تاسیست نگون افتاده، در بی همه زیرکان زبون افتاده، در دوستی شیشه و ساغر نگرید، لب بر لب و در میانه خون افتاده.